آخه دیروز آخه دیروز چه یک رسیدن دیروز چه یک دیدار دیروز چه یک بخندی بندی باه صدایی که میشنوید زنده و مستقیم صدای حامد نیکبهیه که زحمت کشید و چهار بار برای رادیو پسوردهی که امروز هزار شایی شده و آخرین برنامهش چهست دیتراش کن برمون سلام حامد نیکبهی سلام سلام به فرشی منافی عزیز خسته نباشی با این همه برنامه خوبه که دل همه برشات کرد سلامت باشی چه خبر خوبی خوشی سلامتی همه چی ردیفه؟ برم مشغول, مشغول زبط بودی آره بله بله داشتیم, داشتیم کار بچه ها رو برای تو برنامه استیج همونجوری که شاید خبر داشته باشیم داریم این هفته هفته فیناله و از تیم من یه همین حسین عزیز مونده و دیگه من باید یکی دوتا کار برش آماده کنم و دیگه مشغول اون غذای بودم چلوز گرد کردی تماس که خیلی هم سر چلوغ بود دیگه شهرمنده دیگه مزامت شدیم مراهمی حرفا نظر شما که ما دوستت داریم دوست قدیمی ما هم هستیم ما اقدت داریم حتی دستور بدیم ما در خدمتی این یادت میاد همه امروز ما فردا شوی یه گوش کنیم یه گوش کنیم با چه وضیعتی و با چه شرایی فردا این دور چیزی که اتفاقاً یه اولین چیز این تیتراژ تیتراژ سری دوم بود درست این تیتراژ سری دوم رادیو پس فردا بود ولی اولین تیتراژی بود که تو برام خوندی و ساختین دقیقاً بعد, بعد یادم میاد تو این زمان کوتاه بود و بچه‌انم که همش خدا می‌گفتم خدای این میکسش چجوری میشه بعد مثلا وقتی پخش شد احساس کردم که اسپیکر رادیو دا داره منفجر میشه چون تقریبا لول بیس این کار اندازیم مثلا سه برابر خواننده بود دیگه اینمونیم تو رو درواسیه فکر کنم رفتیم دیگه همو میکسو دیگه نه آره نه ولی خیلی خوب درمد و دمت هم گرفت حامد از رادیو پاسوردا چی تو ذهنت داری اولین چیزی که وقتی می رادیو پاسوردا چی میاد تو ذهنت از رادیو پاسوردا چی تو ذهنم می که یادم میاد هنز همیشه دلچسپ توه بیتار رفت بگم و اینو رو اصلا که ازت تعریف کنم و زاویهی زاویه که ببینید وقتی که ما هممون مهاجرت میکنیم همیشه گفتم یه یه بالپرمون میشکنه و با همه ابزارهایی که همیشه باش بودیم دم دستمون نیستش که بتونیم کار تولید بکنیم و من واقعا رو به شخص دیدم که تو خلاقیتی رو که داشتی در کاری که در رادیو ایران می کردی و با اون احساس امنیت با اون آرامش که حالا شد داشت یا با هر داستانی که بود من کیفیت کار نه تنها پایین نایمد و همین به روز برای من همیشه جالب بود من, من فقط می توان بگم همیشه خاطره خوب وقتی هر چند رو که شنیدم همیشه همیشه لذت اون فرش چون علبنده بود یعنی روزی شنیدی رو دیو پر سر دورو یادت میاد من کمترین سیزنی رو که شنیدم میتونم بگم سیزن آخره آ قبلیا رو بیشتر شنیدی. شنیدی از کاراکترها شخصیت ها از اتفاقات چیزی یادت نمیاد اتفاقایی که کاراکترا شخصیت دار اون هاجقایی که در میورد یه کاری میکرد همه این هاجقا رو یادشون آره هاجگا رو میگم که خیلی دوست داشتم ارزم و بعضی کراکتری مثلا وقتی راننده تاکسی تو خیلی دوست داشتم اگه اشتباه نکنم آره ران تاکسی آقا داشتی آره آره دوست داشتم آره آره نبوم حواسمون اینم تیتراژ فصل سوم رادیو پس فردا و البته دومین باری که حامد برامون تیتراژ ساخت. این قصه امروز است. امروز ماست. خودت خوش تو ما خیلی قشنگ شدم یه لحظه. من گویی میکنم یه هویو میکنم هر لحظه خورده این یکی این که منه این همین کاری که دارم آره از میوره کارای کیگا از لحاظ حسی که اون حس بدای خونیش داشتم خب قبلی خیلی جالب بود ولی از لازم اون چی دیوره که خودم میپسندم من فکر می که این تتر این تتر خیلی دوست داشتم که اونجوری با گروه کر اومدم بعد ای این ریتم هفت دربی که این کارتش این لحاظ موزیک موزیک بازیام اگه بخوام بشنوی کنی من خیلی دوست داشتم این اینم که بردروبه با خوندی بله بله بله میگم خوب شد مثلا شو یه کردی ببین بارتی بازدی برنامه هزار دیگه هامد جون دیگه این همه تیتراج برامون ساخته این همه زحمت کسید خب خیلی خوشحالم که تونستیم این لحظات آخر خیلی سخت بود اول نمیتونستیم هامد رو پیدا کنیم و مشغول زفت بود و اینا خیلی خوشحالم که اومدی روی خط روی پس ویدوی شماره هزار و برنامه, برنامه آخر رو ما همیشه هزار تا برنامه 999 تا برنامه با صدای حامد البته کمتر عزیزم. دو تا سیزن رو نبودی آره بیشتر بیشتر برنامه ها رو با صدای تو شروع کردیم گفتیم برنامه هزارم با صدای خودت زنده و مستقیم برهد برهد برهد. شروع کنیم برهد برهد برهد. و ازت تشکر خیلی ممنونم خیلی ممنونم که منو مهمون برنامه کردی فرشته جون همیشه لطف تو محبتت تو شامل حال من بوده اینو بدون اغراق میگم باور کن و همیشه من ترستار در جایی بودم و هنوز هم هستم و برای تو تیمت آرزی بهترین ها رو میکنم نیست قربونت برم ممنونم ازت امیدوارم که تو هم تو کارت باشی و بوروبل کار تو به زبط تو الان فهمی می‌کنم من منتظرن برای زبط برنامه استیجو می‌دون چه استرابی دارم فهمی چان بگم گرفتارن چون شاد باشه حتی دیدار آخر شاید رسید ازو فردا روز به اینا برای شما مرسی مرسی <تصفح> میوسامت بو بوربونت موفق باشی تو شد دارم برات بوسه دا تو خدا خدا, خدا. خدا. با ارش سبز، بفندی اجوا که توی دنیا از موج موج شادی تا فردا و پس فردا اجوا که دلب سبزه پیچیده توی دنیا از آج موج شادی تا فردا, فردا. دوشنبه 24 اومه ماه 1394 و راژیو پس فردای شماره 1000 اوم رو میشنوید هزار سلام برای آخرین خداحافظی بیانیه شماره هزار ای کسانی که در این شش سال با ما بوده اید و ای کسانی که در میانی راه به ما پیوسته اید بدانید و آگاه باشید که رادیو پس بدون شما و حمایتهایتان شوخیهایتان پشفیقهایتان و گاهی هم قرغرهایتان. نمی توانست شش سال ادامه پیدا کند. بدانید و آگاه باشید که پیام های شما تک به تک در این سال برای ما حکم گالون های بنزین را داشت که در باک برنامه میریختیم و بدانید و آگاه باشید که خیلی گلید و دلمان برای شما تنگ می شود اما هرچه که بود امروز ما با شما نخداحافظی کننده که به امید دیدار گویندگانی امزا به احترام همه پس پردااش کلاه هست سر برد از همین الان دلشون براتون تنگ شده هایه برای دوباره با شما بودن لحظه شماری کرده های دیگه شوخی شوخی رسیدیم به برنامه هزار و کلی حرفه نزده و شوخی نکرده و غیر نریخته و اینا دیگه مونده و فقط یه برنامه. این سامی هم که انقدر بعد داستلی مون رو دستمون نتونستیم زنش ببدیم هیچی دیگه. آخرش هم پیر پسر میشی. تو سامی با این رویاتی که داری به نظر من حالا امروز رو هم میرسیم صبر کن. امروز دیگه هم که متبره شدیم برنامه هزار و ویژه برنامهست و مخوا تو برنامه مروری بکنیم این خاطرات این ش سالی که با هم بودیم و. یه بار رادیو پاسدار از اول تا امروز با هم یه دوره‌ای بکنیم. همینجوری می‌خوام یه گپ کوتاهی هم بزنیم با همه بر هایی که تو این سالها با ما بودن و خلاصا امروز یه روز معمولی نیست، روز هزاروم برنامه هزاروم هزار تا خاطره با حرف و لبخند مونده که باید توی دقایق باقی مونده با هم مرور کنیم و بزنیم و لب بیاریم. سامی و شهرامم باقیه برای برای آخرین بار بزنین دنده یک یه بکشین خیلی کار داریم. برو بریم. برم میرم میرم میرم مسخره کردی عمره نگه بری به خدا بهشتن بری یعنی که اینجا مردم دوست داره، اونجا هیچکی دوستت دوست نداره خیلی میگی برم دار. تو که سوتی رو دادی قبلا بردی پیشه برنامه نوروزی با نمیخوایی بری دیگه الکی که شلو قشم کنی نه خب فقط میبری والا آقا میستد دفعه بازم جورت نداری صدا من رو کنی به خدا میترسی آقا چرا اینقدر ملت بیعصاب شدن حالا چرا شما اینطوری برخورد میکنید خب ما پس فردا رادیو پس فردا تموم میشه ولی ما یک برنامه نروزی دو ساعت هم داریم که هیچ ربطی به پس فردا نداره برنامه نروزی دو ساعت ویژه رادیو فردا هفت تا نه صبح روز یک به بشنید بستن نبشی 20 ساله و هزار برنامه فوست ما رو چنگه همه شب ای دو خونه تفونیو رو فوست زهره ما رو میشد این که بری با این همکارای جدید تو فاراموندو قدیمی‌ها بری و آتیشو سازار یاد بگیر. خیلی خوشا برات آرزو می‌کنم موفق باشی خداحافظ. خیلی ممنونم. همه میخوان من برم. خدا رو شکر کسی ناراحت نیست. همه میخوان من برم. خب رسیدیم به برنامه 1000 رادیو پاسوردا یه بار دیگه مردنم آقا گفتم رسیدیم به برنامه 1000 رادیو پاسوردا و جایی که دیگه این برنامه کارشو تموم می‌کنه راستش وقتی که به پشت سر نگاه می‌کنم ماجرای رادیو پاسوردا برای من مثل قصه قدیمی میمونه حدوداً ش سال پیش همین موقع بود که داشتم بار سفرم رو به سمت پراگ و رادیو فردا می بستم که نطفه این برنامه یعنی یک برنامه تنز با ضمون آزاد و بدون سانسور و دقیقا با همین اسم یعنی رادیو پسوردا تو ذهنم بسته شد آم تو باشی. دوزگیر نصب کنیم رو رادیوهاتون دوزگیر نصب کنیم راننده آجنسا راننده تاکسیا رادیو بازار، ماشین سوارا تو ترافیک مونده ها کلهم اجمعین تو ماشین گوش کناش رو رادیوهای استبدیودان به سرعت دوزگیر نصب کنیم چون چون مادی موسیقی ما حالا بگین که کی؟, کی؟ امروز نه فردا نه پس فردا رادیو پس فردا رادیو پس فردا شنبه تو چهارشنبه ده تو یازده شب همین جا همین موجه همین فرکانس رادیو پس فردا اون موقع دوزگیر اون موقع البته 10 تا 11 بود سال اولی که رادیو فردا راه افتاد اولا شنبه تو چهارشنبه 5 روز در هفته برنامه زنده داشتیم و 10 تا 11 شدم اما پیام رزی مسئول بخش موسیقی رادیو فردا رو را حتما خیلی ازتون می‌شناسین من و پیام رزی میتونم بگم حدود 15 سال شاید هم بیشتر هم دیگه می‌شناسیم و رفیقیم با هم همین ازی کسی بود که توی شروع این برنامه خیلی نقش داشت و کمک کرد و امروز هم به عنوان یکی از مهمونای ویژه اولین مهمون ویژه توی استودیو با ما سلام علیکم هزار تایی شدنتون مبارک سلام می به تو, تو. به همه‌ی شناندای خوبه برنامه پس فردا 6 سال گذشته واقعا باور نکردنیه. باورت میشه؟ من الان داشتم میومدم طرف استودیو رسیدم به استودیو یه نگاه انداختم به استودیو بعد کردم که حتما اشتباهه. گشتم پیدا نکردم جمعیت تو این استودیو واقعا من کرد شدم. بعد فهمیدم تظاهراتیه مثلا در مخالفت در به پایان رسیدن مثلا برنامه پس فردا و هزارتایی شدن دیدم بچه‌ها میگن بیا بیا نوبت توه و فهمیدم درست اومده حالا, استوديو... که... حالا برای اینکه بر... شنوانده متوجه بشن که تو داری راست میگی و درونه میگی الان میکروفون رو واکن همه با همدیگه یک دو سه سلام بگین یک دو سلام آه. آه. آه. آه اصلا با اون روزای داری. اول خیلی فقطابیس. فرق <تصفيق> داره آره من اصلا یه سری رو یه <تصفيق> ا... مهمونم دارین <تصفيق> حتماً اینطوریه یه سری رو میدونم که حتی اسمشون رو هم نمیدونم مثلا از بربدی این که الان پشت برد نشسته پشت میز کنترلر مثلا کیه این اه. حاهم می صامی دیگه نه چقدر بزرگ شده 6 سال گذشته یعنی شکلی نه ریش نداشتن خیلی خوشحال شدم اومده <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> خیلی عوض شدی سامی آره از اون روزای اول تا امروز این برنامه هزارم شنونده ها هم با تو این سفر اومدن منم هر وقت که فرصت کردم صامی رو ندیده بودم البته که انقدر بزرگ شده ولی هر وقت <تصفح> فرصت کردم یه سری به استدیوی پس پردا زدم و میدونم که حسابی با اون روزها فرق کرده این روزها اون روزها من و تو تقریبا دو نفری با هم دیگه تو استودیو می شستیم. بله و یکی از خاطرات خوبم برای من اینه که روزای دوم سوم احساس کردم که من مخاطب اختصاصی زنده برنامهم چون تنها کسی بودم که تو استودیو هم تو رو می دیدم. هم برنامه رو می و خب کنترل برنامه‌مون روزای اول دست من بود خیلی خوشحالم یک نوته‌ای که اون روز بسته شد و برنامه‌ای که اون روز آغاز شد تا به اینجا رسید و این هم مخاطب کرد. منم همچنان همراه شما امروز اینجا در استودیو هستم هزار تایی شدن همتون مبارک دمت کرد توی پرومو های همون تیزرهای اولیه رادیو پس و پیام واقعا خیلی کمک کرد پرومویی که همون روی رادیوهاتون دوزگیر نازک می‌نمونیم اولا با هم یادم ساختیم یه دونه دیگه بود که بازیگری هم کرد توی یکیش. شما که ماهواره دارین با سفارازیت چاره دارین این اینور داری چنگاره دارین اینا این قولوا کارت خوره از اون کانادا این اشتباس یه اشتباغی زدی اینو رپتی رپتی به, ربطی به... آره من خودم صدای خودم رو تشخیص ندادم من بودم الان هیچ بعید نیست بالاخره آدم وادار میکردی که همچین سر صداهای اون اوایل در بیاره پیام از برام شنیدی کدوم کاراکتر مثلا برای جذاب‌تر من هم آقا دشتی رو دوست داشتم به خاطر اینکه این که یه کاراکتری بود که به نظرم خیلی نزدیک می왔 یعنی با اینکه چند است که در ایران نیستم ولی آره آقا دشتی رو دوست داشتم شاید بگم بیشتر از بقیه آره. خیلی ها حاج آقا در مومنین رو میگن جز به مندی هاشون بوده و حالا جالبه تو هم میگه آقا دشتی حامد هم الان اشاره کرد به آقا دشتی آقا دشتی همی که از اون شخصیت هایی که موندگار شده خب حالا تا بچه ها اگه بتونن این پروموه رو که تو هم توش آره آره لطفا اینو پخشش کنیم ببینیم جدای پیام بذاره متفاوت تو هم داشته. جبون بودن جونشون به لب رسیده از این بدی هجابی ها دیروز در محل کارش با ضربه چاپ کار احمد ضربه رای دور نرخ تورم به زیر پنید ساعت خواهد اینم که هیچی نداره شماره اون ماهواریه که دیشب از لینا گرفتیم کجا؟ به نظر نمیاد مهران آها آها بچه های کچه پشتی داداشه آقا خوش الو الو الو سلام شما اه من رادیوشو آقا خاکی ام از بچهای کوچه پشتی ها چی میخاید ها حالا فقط کونیو کنسی اورج دارم و اپسولوت گلابی پلمپ کشمش درسازم هست خوش خوراج نه نه من من راستش ماهواره میخواستم البته با همون که با آقا خاکی دادی ها خب بگو دیگه عین زن بستگی داره چی بخوای تی وی بری شو فیلم از اون فیلم ها چی بخوای رو چشمم قیمتا حساب میکنیم ولی اگه اون رادیو ها رو بخوای شرمندتم الان که نمیتونم فردا هم نه حس مردا میتونم واسه جونش کنم اونم این قیمتا نی خیلی کشیده بالا جون دادنش برو رو 5 6 برابر ای آخه چرا من اصلا بیشتر واسه همون رادیو میخوام آقا مهران بنت همونش گرونه ای میخوای با همون 5 برابر قیمت واسه ردیفش کنم اگرم نه؟ نجد... باشه باشه آقا من فردا منتظرتون هستم تماس <تصفح> میگیرم بود <تصفح> این مؤاخوره ی جوریه که فقط حس مردا میتونن واسه بیارم قربونه آقا <تصفح> این هم صدای پیام چقدر که سامی بزرگ شده تو این سالها به نظر صدای من یه خورده خود جرماره جوانتر به نظر میاد دستکاری هم کرده بودیم صدا رو برای آره آره آره خواتره ها زنده شد یه چند تا اینجوری با هم دیگه کار کردیم یه بار دیگه هم مرور کردیم چند ساله پیش فکر میکنم یه مرور دیگه روی قسمانه دیگه کردیم من خوشحالم که بالاخره بخشی از بخش خیلی خیلی کوچیکی از این برنامه پرطرفدار و پرشنونده بود. ممنونم ازت پیام رزی فرصتتون خیلی کمه خیلی با گفتگوهای بیشتری داریم در برنامه با بچه های دیگه و بخش های دیگه ممنونم ازت که اومدی و امیدوارم که موفق باشی و امیدوارم بازم بتونیم با هم کار کنیم. بازم با هم کار کنیم هزارتایی اتون یه بار دیگه مبارک نوروزم همینطور. نوروزم پیش مبارک. برنت. یکی ایرانی بای ایرانیم چجوریه از نزدیک؟ وای چقدر خوشتی پی یه زن برو دورتر سلام، سلام فرشتی، سلام چی شده؟ تو من بگم تو بابای میگه بنده دیگه خب چیزیه چی من دارم برمیزارم من باید بگم تو ناخیل جدول آرتا بیات رو ببینم هیچ بدوم درست صف نشدام بشم از اینو اما مشکلی چیزی نداریم مطرح کنید شو جوابتونو بدم چرا اصلاً آقا نه آقا من می‌خوام یه مشکلی رو بیان کنم که خیلی از نماینده‌ها واش تر گیرن بگو زود برو بحثی از پشت صحنه رو رودی پس باز دوستید دوست داشتید <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خب <خوده اصفهار ایوه. تصفيق> امروز این برنامه بخشایی از پشت سحنه راژیو پس فردا پشت سحنه های راژیو پس همینطور نظر بر بچه های راژیو و همکارانمون در رادیو فردا هم راجب رادیو پس فردا پرستیدیم باز لابلای این برنامه خواهید چنید داشتم از خاطرات قدیم رادیو پس فردا به اینکه چجور به اینجا رسید می تو اردی بهش سال 89 وقتی که فکر کردیم خب هرچی برنامه‌ای رو میخوایم راه بندازیم در به در دنبال یک نویسنده طنز این کاره بودیم برای رادیو پاسفردایی که فقط یه ایده بود و باید به یک برنامه تبدیل می‌شد بعد از کلی این ور ور از طریق یکی از دوستان مشترک خلاصه جلال سعیدی رو پیدا کردیم و با هم شروع کردیم به حرف زدن که البته اون موقع اون اوایل اسمش رو لو نمی‌داد اسمش بود سعید سعید بزرگی جلال و موقع البته مشه ما نبود و از راه دور و با ایمیل کار نویسندگی برنامه رو شروع کرد منتها نه به همین آسونی‌ها یهو دیگه سلام سلام علیکم حال شما چطوره؟ برنامه هزار شد جلال <تصفح> <تصفح> چیکار گرجی بغض... می‌خوای بکن؟ مخض راه گلمو واسه <تصفح> واقعا نمیتونم حرف بزنم. جلال یه ذره از اون روزا بگو. جل... سعید بزرگی اینا نبودم من اون موقع نازی بلا و این چیزا بودم. آها اون که آره آی دی هایی بود یه سری آیدی بودی ایمیل بودی. این مایای نازی بلا و اینا بود. آره خوشگل بلا نازی خوشگله. از اون از اون بگو جلال از کی شی... اولا اومدی به رادیو فردو پیوستی بگو خیلی حواشات بخوام ببین تا اونجا که من یادم من همون اردی 88 اون که گفتی اون دوست مشترک ما رو به هم معرفی کرد که تقریبا یک ماه از شروع برنامه یعنی مونده بود به شروع برنامه و ما شروع کردیم صحبت کردن از راه دور و اتوت دادیم و متن رو تلنجار رفتیم باش تا رسید به اون چیزی که بل اخیری تو خرداد شروع شد اوایل هشت 89 چقدر سخت بود اون موقع اون موقع الان فکر بود. میکنی به اون موقع به من مثلا بازه زمانی کار کردنم و یه هفته به یه هفته در نظر میگرفتم یعنی امید به ادامه کارم خیلی سخت <تصح> یعنی هیچ وقت فکر نمیکردی که هزار تا بشه این برنامه <تصح> هزار چی خوب بود 10 تا 10 تا میرفتیم بلو. کارکتر محبوب محبوبت کدومه میدونم همه را دوست داری خیلی, خیلی از کارکترهایی که خب توی بروردی پس وردا شنیدید خب نویسندگیش رو جلال انجام داده. میخوام هم کدومی که خودت بیشتر از همه. آخه لامصب همه‌شون مثل بچه‌هام میمونن. من نمی‌فهمم فرق بوده. بچه‌های منم هستن. بچه‌ی تو مادری یا پدر؟ آره بعداً صحبت کنیم. اصلا میگیم ادب تشون کردیم اینجوری بهتره که مشکل اونجوری پیش نیاد. ببین من خب مسلماً همه میگن حاجی و همه میگن اکبر و همه میگن دشتی و اینا خب همه اینا برای من یه جورایی همشون دوست داشتنی هم ولی من شیط... شیطنت و اه... یه جورایی ببخشیم پدر سخته یه اکبر رو از همه بیشتر دوست دارم اکبر میکروپونتر اکبر میکروپونتر موجودی بی سی که <تصفح> <تصفح> <تصفح> خب با اجرای فوقالدهی خودت اصلا به آج چقدر وقت میذاشتی برای نوشتن متناه هایت اه... من, من, من میدونم و ام... آینو دارم میپرسم که بگی جنوانده ها بدونم ببین برای هر برنامه تقریبا ما یک روز کاری که میشه قلوهش 7 الا ساعت مفید کاری وقت میذاشتیم هممون که در این حال من هم در همون جوری درگیر ماجرا بودم فکر کنم قلوهش 7-8 ساعت مفید برای هر برنامه برای هر برنامه خب حرفی داری حرف دیگه برنامه هزار بو برنامه آخره و دیگه شخصی مثلا با شنونده ها با مخاطبا نه خب خیلی خوشحالم ببینید برای من خب تجربه رادی پسورده تجربه جدید بود یه مدیوم ارتباطی جدید بود من از مطبوعات اومده بودم و یک طیف بله، یک طیف گسترده ای از مخاطبینی که شاید توی مطبوعات بهشون دسترسی نداری و رادی پسورده برای کاری که من می نوشتم آورد که خب این خیلی برام مقتنعه و مسلماً برای من همیشه راج password یک خاطره خیلی عزیزی خواهد موند هر چیزی که بشه بعد از این بله برای بله هممون همینطوره خلاصه به اینجا رسیدیم که بعد من و جلال از رای دور شروع کردیم به حرف زدن و چونه زدیم و بالا رفتیم و پایین اومدیم و کشتی گرفتیم و بالاخره رسیدیم به شنبه هشتومه خرداد هشتود و که دیگه وقتش بود برنامه بره رو آنتن اون موقع یعنی فصل اول هم توی گفتم این برنامه ساعت ده به ده به وقت ایران شروع شد تو یازده با ما برای اولین بار با این اومدیم ا خدا جون ما همه مسافرین مسافر رویاهامون خودت یک کاری کن همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه نمیدونم امروز فردا شایدم پس فردا رویاهات از دست نزید. این کرد ای رویات از دست دام زندگی ای بیاب براوتیشه که برمه توش یخ. بله رویا هامون از دست که ندادیم هیچ خیلی سفت و محکم چسبیدشون و سره این رویا و اون رویا بازی برنامه بود که تازه شروع شده بود و کنتورش تازه شماره میدا برنامه یک برنامه دو برنامه پنج برنامه 20 و موقع چقدر دور بود برنامه 100 برنامه دوی. 500 700 روالو برنامه هزار اما رویاهامون از دست ندادیم برای هزار شدن و توی همه این هزار برنامه همیشه و هر روز سعی کردیم خودمون باشیم اینجا یه رادیوی آزاده ما نه وابسته به حزب خاصی مثل و یا مذهب خاصی مثل و هستیم و نه مخالف مثلا و یا موافقه ها ما خودمونیم، راژیو پسبردار شنید بازداری میدی دوباره حالا که دوستاران بیشماره و یازده ماه شادی همچه شهر حالا یک بار زمیزون بسه داره اگر این دفترم خدار خد نمی بود می گفتم از یکی زیده داره چونکه می دود من پرماه نداره بگم از نز یا رمز کناره ز پس قدرهای رفته قنیمت باد که این نفد هزاره به دو فرشی آخه آخه پیجمان پژمان عزیز ممنونم ازت و ازت تشکر میکنم پژمان یک دورهی شاید بگم هر هفته یک شعر جدید به مناسبت موضوع برنامه و کاملا موضوعی برامون پلفونی زبت میکرد میفرستاد و خیلی زحمت میکشید و همیشه با ما بود یادت همیشه با ما هست پژمان عزیز ازت بازم تشکر میکنم و امیدواریم توی برنامه دیگه ای باز صدای شما رو داشته باشیم. خب بچه ها کامنت چه خبر؟ سلام، کامنت که خیلی فراوون بود. تشکر کنیم از همه عزیزانی که برامون کامنت گذاشتن و لطف کردن. فقط ما یه چند تاشو گلچین کردیم و این چند تا رو براتون می‌خونیم. خانم مریم صادقی نوشتن که به مامانم میگم رادیو پاسوردم تمام شد آ منو بفرست خونه شوهر خودت راحت کن میگه به بابات نگی آ تازه میخواد برام یه آیفون بخره واسه برنامه فرشید یعنی میخوام بگم ما خانوادگی ارادت داریم ما من چند سال دنبال زنم واسه سامی خودمون اون وقت شما رو نکرده بودی حالا برنامه تموم شده میگه بری دنبال شوهر چه وضعیه واقعا بله حالا منم یه کامنت بله بله بله اومدن خانم ستاره احمدی نوشته بودن که یکی از بهترین خاطراتشون با رادیو پسفرده با اون قسمت بود که حاج آقا نوه خوند و گرگای توی بیابون حمله کردن که این فایل رو با هم نشتبید ایوان؟ این که داره حاجی میشنمی حاجی؟ چرا؟ مرچه داره میشنمیم چه؟ حاجی داره اون خوردن رو بیخیاشه آه. حاجی جون گوش کفت ددای گرگی بشم اونم حاجیه سواری بورگ؟ هدی. چقدر بطور کرد؟ هدی. ولی سعیم خوف سواریم چقدر سطبر کرد؟ هدی. از چهارشنبه مالش برادر شما جلو جلو برو ما شما میای مگه یک بکبور؟ هملا برسه تشو ما مایش ما خورن نتیجه طیب ما نیامد مگه؟ برادر آقازی آدم ما دور نشوم ما خوشکردیم. میگم میخوای ما از جوز به کسی مونه میتونیم جلو نیام. آدمی دور نشوم برادران. خب بله اینم بخشی از حاجی و آرتا به امرای آرتا بود چند تا برنامه از رادیو پاسوردا که گذشت مهدی تاهباز به گروه رادیو پاسوردا پیوست ولی در پشت صحنه اول بعد از برنامه‌ی صدام رادیو پاسوردا پاشو گذشت جلوی صحنه شد آرتا گزارش کرد کاراکتری که گزارشگر بود. همیشه آخر گزارشاش کتک می‌خورد یا منفجر می‌شد ولی بازم زنده می‌موند و ولی خب کاراکتر آرتو اشکال مختلف توی فصل‌های مختلف جایگاش توی برنامه عوض شد. الان هم کنار من مهدی تاه باز دیگه نقش آرتونش از سبام گپی درآورده‌ش بزنیم. سبا آقا سبا تو این نمایش من خورد برگی آخرش شده من یادم نمیاد. منم یادم, یادم نمیاد ولی اگرم خورده دوباره زنده می‌شه خیلی فرقی نمیکنه منفجر شد دیله شدی همه اتفاقو افتاد. آره خوبی؟ آره. خوبه؟ آخرش هم تموم شدم دیگه. آخرش هم تموم Ha, <laughs> ha, چقاوا سلامتی الان من ببین شما الان داشی میرفتین می, می اومدین بودو بودو این من حال کرده. آره می می‌کردم دلت تنگ شد استرس داشتی آره دلتنگه که هیچی باشه حال می‌کرد شما بودو بودو بگید حال می‌کردی با... که تو نیستی نیستا فقط تماشاش می‌کردم <تصحق> دلت در آرتو تنگ شده. نه برای حاجی تنگ شده بیشتر درا... <تصحق> <تصحق> <تصحق> آره یه زمانی هم آرتو همش عاشق شد یا هر کی می‌دید عاشقش می‌شد دنبال زن و بود آخرش هم به ایج نرسید زنده خدا یه شرمی من گرفتم آخرش نگرفتم. شرمینو یادمه که گرفتین. اول نشد. اول بوده بود بعد گرفتی بعد جدا شدیم مثل شد. بله بله بله درسته بله بله. آقا یکی از اولین حضورهای آرتا در برنامه زنده رادیو پاسورده رو بشنوید. اصلا یه کاری میکنیم که از فردا شب خودتون بخواید که آرتا بیاد برنامه رو اجرا کنه. اصال رادیو پس فردا چیه خودمون میریم رادیو پسون فردا رو را راه میندازیم بهتون نشون میدیم که برنامه ساختن یعنی چی دشوند. مگه نه خیلی زویه بودا بذم من دوبله کنم اینجا بذین جلو به منو میذاری اینجا یه روش بزنی ها موقع فارسی بلد نوت از بزنه فارسی شو ما هم که کتک خوردنمون ملسه فقط مونده که فرشید بیاد اینجا و بخواد یه بلایی سرمون بیاره ولش <تصفيق> کن آقا ولش کن بریم سراغ همون برنامه فرشید حالا یه کارش میکنیم خاطره چی دارید از رادیو پس چیزی که تو ذهنت مونده باشه مثلا خب برنامه خاصی یا مثلا ببین یه سری تو دوستشم بیا تو ذهنم نایمدش نایمد. مثلا آره مثلا یکیش فری برزه. من اصلا اینکه از انگیزه هایی بود که فریبورز یه بار ببینم اینش فقط از نزدیک نایدیم اصلا وجود داره فریبورز <pack laughing> به نظره یا <laughs> فقط صداس فقط صداس آره یه بارم <laughs> چیز کردیم که فریبورز اینا فقط آره نشد ببینیم نشد ببینیم آره آره بعدم ببینیم شن شد یه یه یادته اینو اینو بشنویم یه سربازی بود پشت پشت تپه ای. آره اینو بزاره سامی میخواستم ورده این کلانتری بشن تا با یکی دو نفر صحبت بکنیم اینجانب احمد علاء گل ماری عزامی از بغض تا توابع تجود محله یازما خسروی و چفره دفاع اه. جان مال ناموس خود لا ای بر... بابا ای شو دی جو سفره ما پنج سر کله تو پیدا نشه اونجا تو جدی چجوری همه جا هستی ها ببینم تو هنوز همو یازما خسروی؟ بخدا چجوری همه جا هستی ها می‌ذارن واسه پیاده می‌کنم بعد ما بکنیم با از علیرضا رضایی که یه مدت کوتاه یک دو ماهی برای پاسا دو نویش که اتفاقاً این بخش این آرتا و این, آره. این سربازم اون زحمت کشیده یه آره. یاد یام از اون یکی استودیو بکنیم یادش به خیرم استدیو قبلی الان شما فکر کنم یک سال اومدیم اینجا هشت سری توی اون یکی استودیو بوده. متو مخاطب شهر منداکی نمیدونه میدونید نمیدونیم حالا ما ولی همون استدیویی که برنامه تلویزیونی رادیو فردا صبح این برنامه خبرهای پنجه ایقیه خبرهای پنجه ایقیه آره پنج آره تا چی داری بگی بر برنامه هزارون برای برنامه آخر در جدیه جدیه داری میریم؟ واقعا داری میریم نه نمیریم اینم بارش نمیشه به خدایی بذارم بریم هیچی دیگه انشالله که چیز بر برگردین زود و یه شکل قشنگتر برگردین و خلاصه به میاین نگه نمی جایی نمیرین که پس فردا تمام شد ولی پس فردا تمام شد بعد برین جروی هم میخواییم بیاین عقب مثلا رادیو فردا را که دار راژیو اموز بزنیم هنوز هیچ فکری راجبش نمیدونم راژیو پس فردا خدا حافظ آره خب خیلی خوب بود دیگه یادش به دیگه, یادش دوست, داران دیگه. آرتا دوست داران آرتا, داران آرتا. من هم دوستشون دارم دیگه دمشون گرم آرتام هنوز آره یاد آرتا میکنن و خدا <تصفيق> ممنونم از حضورت آرتای عزیز مهدی تاحباز عزیز اما آرتای قدیمی رو دیفت فردا اشتای موفق باشی دم همگی گرم خلوصه پیشا پیش سال نوتم هم مبارک سال نوع همگی مبارک سال نوع شما مبارک این بچه که اینجان همه شرونده ها هر جا که هستن خلوصه برنامه نوروزتونم هم و حال کنم حسابی برم. ممنونم برمی چاک چاک خیلی خاصی به تنز نداره به نظر من رادیویی ترین ای که رادیو فردا در طول 9 سال گذشته که من شخصا توش کار کردم به لحاظ ماهیت و به لحاظ طراحی رادیویی تو این برنامه تو این رادیو اجرا شده رادیو پس فردا بود متن و محتوای ها خیلی بامزه بود یعنی باعث شد که شنونده قلقش بیاد فکر کنید که مثلا من چطوری میتونم تماس بگیرم به هر هرهر مثلا بلند بلند به گوشش برسی که خیلی با است نظر شخصی من در مورد کلن نوع برنامه های تنز در بیرون از ایران اینه که اصولا به دلیل شرایطی که درش به برن چون آبش خور اینه که شما در موقعیتش میشه وقتی نیستیم دوچار نگاه پتری میشیم و دیگه مرز بین حج و حضل و خیلی میشه. نظر خیل برنامه روزی فسفرده واقعا به نظر من برنامه خوبی بود و اگر که پخشش متوقف بشه قطعاً جاش خالی خواهد بود مطمئنم که طرفدارون زیادی داشت که ناراحت میشن از این موضوع که این برنامه دیگه پخش نخواهد شد ولی از طرف دیگه فرشد منافی کماکان با ما خواهد بود مثل مینه دونالدو ای ماست دیگه فرشد منافی به این راحتی از دست نمیدیمش حالا احتمالاً توی پست دیگه بازی میکنه و مطمئنم که ورشید همچنان گل خواهد زد برامون لا آقای گل خواهد شد دوم که جان ها به سحر در زنا که شبین گفتیم از بر بچهای رادیو فردا از همکارامون رجب رادیو پس فردا نظر خواستیم و خب این هم بخشی از نظرات تعدادی از همکاران رادیو فردا بود یه بخش دیگه ای شب میشد یک جورهایی برای خیلی ها پیشونی رادیو فردا شده ویترین رادیو فردا شده و خب طبیعتا مخاطبای خیلی زیادی هم داره البته من ببینم این مسئله ای که آخریشه دیگه ما رفتیم اون چند بار از این بلاها سر من هرده ولی هر بار ناچار شده به خاطر اون تفساره که برنامهش دارن این برنامه رو باز با یه فصله تازه با شکل و شمایل تازه این دو مرتبه ارائه بکنه این دفعه دیگه میگه هزار تا شده و من میرم. من میدونم که قادر نیست هم چی کاری رو بکنه و اون کسانی که منو برنامه دوست دارن حتماً بادرش باید برنامه ادام بده و من ازشون خواهش می‌کنم. اگر خواستید به فرشید منافی برسی حتما با من تماس بگیرن آدرس منزل پتو اون جایی که میشه خدمتش رسید به راحتی من هر من در اختیارشون رو میذارم ولی خواهش می‌کنم که وان اعمال خشونت نکنن تا دو سه تا دندش بشینه کافیه که بتونه برگرده بعد برنامه ازالم حالا اسمش هر چی بشه جان خایزار شمایل پدر صاحب‌ها و شخصیت‌های برنامه چجوری بشن من نمیدونم ولی این اتفاق افتاد میبینیم یه سدجا شما آمدین بازم میبینیم هم دیگر آرزو میکنم که هم برای شما هم برای آقای منافی هم برای هم کارش آرزو موفقیت میکنم مثل تای همه مساحبه که هپی اند و مثل فیلم هندی آرزو موفقیت میکنم اون روزایی که برنامه رو شروع کردیم خود من بودم دیگه همش من بودم و خودم بودم و اول که منو پیام بد سامی اضافه شد ولی خب در اجرای برنامه کس دیگه‌ای غیر از من کمک نمیکرد یکی از مشکلات ما خب تو این برنامه نداشتن شده خانوم بود برای تنوع و اینکه خب به هر حال یک نماینده زنان هم در برنامه حضور داشته باشه نمیدونم چی شد که یهو سرکله شرمی قانون تو برنامه ما پیدا شد شرمی خودت میدونی سلام سلام, سلام. راستش من, من خوب... سلام علیکم خوبی سلام علیکم احوال شما خبره صد سال به این سال‌ها برنامه هزار اسمو وارد <تصفيق> هزار سال به این سال هزار برنامه اینا نو خوبی ورونت خب بگو چی شو راستش من کلا از فنای برنامه فرشید منافی بودم بنابراین همش دنبال می‌کردم ببینم که چیکار میکنه بعد که از ایران رفت و شاراد پس پاسپاردو شروع شد من از اولین شننده ها بودم <تصفيق> از دیگه یه ماه بعد برنامه رو کنم مسج دادم بهت که من می‌خوام باتون همکاری کنم از راه دورش من طراح نیستم و گفتی نمونه کار بفرست و رزومه بفرست و اینا و یک ماهی ما آزمایشی کار کردیم و اون شخصیت توی شهرامین هم اونجا عکس گرفتی بحثا که یه دختری که روزانه هاشو میگه تو ایران زندگی میکنه اینا یعنی ما هیچ وقت همدیگر رو ندیدیم تا جایی که من یادم نه. <تصفح> این همه <تصفح> مخاطبین رادیو پسورده هی گفتم عکس بذار. شرمین شرمین کجا چرا شرمین نمید بابا ما همدیگر رو ندیدیم اصلا تا حالا یکم از خودت بگو شرمین شاید چند منده دوست دارم بدونن چند سالت مجردی متحلی بچه داری نداری آ خب آه. من سنی که سن و سال سیکرته سکرته. اون چه زن آره کلا بله بله. سیکرته متأهلم بله. و یه بچه دارم. به همین در همین حد چند سال دیگه اینو نمیتونی آره. بگی دیگه. خیلی. نه دیگه نه دیگه. حالا بعد ان هم الله هم یه عکس میذاریم دیگه آره. هم <تصفيق> خب ممنونم ازت فرق خواستیم خیلی کوتاه بود یک گپ و گفتی داشته باشیم ازت تشکر کنیم برای کل این بلوانه. روزهایی که با ما بودی نه هزار برنامه کمتر از هزار برنامه ولی در حال در کل این فصلهای رادیو دیو پس و هردافه میکنم ترمانت همه فصلها با ما حضور داشتی کنار ما بودی و میخوایم الان روی خط باش نرو جایی میخوام او یکی از اولین صدا شرمین رو بشننویم. خیلی متفاوته ب بشنووییم پی رو. سلام، اسم من شرمینه و امروز قرار شما رو بخنا بدم آشناکنم. من می دون دارم که خیلی آانکارده همین در همین حد گفتم که... بود فکرم. آره فکر کنم اولی اولی بود اما خیلی ها شرمین و شراگیم و شرمین و, و اینا رو همه رو غراغاتی میکنن میخوایم الان بریم شرمین تو روی خط بمون بریم صورا قایب، به همیشه حاضر برنامه شراگیم زند که گرچه دیر اومد فصل آخر به ما پیوسته ولی خدایی همچی با توپ پر اومد خوبی شراگیم الو شراگیم شراگیم الو غلط شده؟ بله، دور غلط شده. می‌خواستیم بگیم که شرمین خانم ایشون بودن که الان با هم صحبت کردیم. شرمین خانم برنامه رادیو پادبردا همون خانمی که راجع به و راجع به ننجون و راجع همکاراش، و اینا صحبت می‌کردن، همیشه داستانی داشت. شراگیم با گاف و میم کسی بود که در این فرسی فصل،, یعنی فصل آخر به ما پیوست و نویس یعنی کمک میکرد در نویسندگی برنامه به جلال سعیدی و به نوع نویسنده برنامه بود ولی خب خیلی اینینار های اشتباه می گرفتم می گفتن شراگین شرمین کیه و این حرفها. هنوز نتونستیم بگیریمش فکر کنم. خب پس با شرمین خداافظی می با شرمین خداافظی می شرمین ممنونم ازت. فرصت نشون میخواستم شراگیم هم بیاد روی خط که با همم هم این گفی بزنیم ولی فرصت نشد امیدوارم موفق باشی پیشا پیش هم نورزو به تفریق میگن قربونه تمامی کن خدا حافظی. شراگیم الو الو شراگیم میشنوی سلام علیکم خوبی الو نه خیر. این تلفن این استدویه ای ما که خرابه شراگیم یه ذره صحبت کنم که آواز بخون ببینیم صدات میاد یه ذره آواز بخون برامون الو بله ظاهرا آنتن نداریم من आवाज بخونم من داریم. بله بله بله داریم صدا قطع و میشه دیگه قطع وصل میشه آکی. آکی. چه خبرها خوبی خب ظاهرا این ارتباط برقرار نمیشه من معذرت خواهی میکنم از شراگیم میخواستیم باش صحبت کنیم ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد امیدواریم که هم هر جا هست موفق باشه و یک بار دیگه فقط میگم که شراگیم زند نویسنده این فصل یعنی فصل آخر راژیو پس در کنار جلال سعیدی بود و خیلی زحمت کشید دمشگرم تشکر میکنیم ازش و آرزوی موفقیت بلان بلان جونور هم جنبار ها تو کارشون ناسی ناسی واسه من شلاخ سداتویزدار دورتر کن مارکه همزیزدار دورتر کن بشت بشت وا کجاش می‌رین؟ واس کام بیس کلامی ام. آره کجا؟ الان تو داری اده فرشی تو در میاری. خانی هندونه چیه؟ اینا هم زرد هم درازه، ماز دیگه. همو اولیارو برن؟ وای چقدر خوب. نمیشه هتون نده. هی من میگم گوش نمیده. اینا کار نمیدنگین به مام کو. گفته اینا دارم می‌میرن تقریبا. دو دقیقه با مرج واسه. یه حسی گنجی هست خیلی خوبه. هنوز کمی انتظار قوری. انتظار قوری زان ققلی. چی جز توئه جان تو میزنم عزیزم شب زود میای خونه یا تزاگریزا رو بفسه سر مادر من وقتی انتظار آفتاب زده زدی بود چیکان <مع> داری بابا ناجی داری بعدت میاد بعدت نجد... <مع> با به نظر شما هماسه جلوگیری از حضور خاتمی در عقل دختر موسوی چه فوایدی میتونه داشته باشه؟ <تصفيق> مردن این قفندیدن این نفسا و به نظر شما هماسه جلوگیری از حضور خاتمی در عقل دختر موسوی چه بف... آدم نام ببخش چش بریم سراغ فریعبرز و غریب خیلی سریم فرصت نداریم با فریعبز و غریب هم خیلی کوتاه ازش میخوایم تشکر کنیم با خداافی کنیم در برنامه هزار سلام فریبرز سلام سلام به همه شما ها ما هیچ وقت ندیدیم همدیگه و این چه زندگیه واقعا؟ میشه سالی سال، 6 سال داریم کار خودمون داشتیم داریم داریم آره. آره. منم هم همیشه یادتون هستم همیشه یادتون با من هست قربونت میخواستیم کامرانم بیاریم روی خط متاسفانه تلفنمون فقط یه خراب شده نمیدونم یه مشکلی داره فقط یه نفر میتونیم بریم روی خط گفتیم دیگه برنامه هزار حتما باید بیای و باید یک گپ کوچولو بزنیم اگه یه خاطره یا یک جمله‌ای داری راجب به توی این برنامه آخر برنامه هزار میشنویم ازت والا فقط میخواستم همینو بگم که میشه خیلی ها رو ندیده باشی اما دوستشون داشته باشی شماها و خیلی دیگه ها که دوست, دا دوست دا دور, دور هستن من دوستشون دارم اونا من دوستدارن، دوست دارن رو ندیدیم و همیشه عشق و یاد و خاطرتون با من هست قربونت برم ما همینطور خیلی ممنونیم ازت در کل این روزهایی که با ما بودی و دوستت داریم همگی امیدواریم که موفق باشی. خیلی خیلی من من فارسی جم رادیو پاسدار یعنی رادیو انرژیزا و رادیوی پر از انرژی‌های مثبت و در یک کلام یه گروه قوی با یه موجی خوب و دوست داشتنی پیشاپیشم سال نو رو به تو همکارات به خصوص هم شهری سعید تبریک میگم یه خواهشام ازات دارم اگه اوقات از برنامه 913 قبل قبلام روی تلگرام بذار دوستارت بابای امیرعلی ساميه شهرام بوري بریم که برنامه آخر خیلی کار داریم. بوردونت برم ممنونم ازت. یه عالمه تلفن داشتیم، یه عالمه کامنت داشتیم. متأسفانه فرصت نشد تو این ساعت همه اینها رو بگنجونیم. کلی دیگه باز راجع به چیزای دیگه می‌خواستیم حرف بزنیم، کلی می‌خواستیم خاطر بازی کنیم. فرصت نشد. کامران ملکموتی هم با ماست. کامران کمتر از یک دقیقه فرصت داریم. سلام می‌کنم بهت. و ازت تشکر می‌کنم خاطر حضور در کل این روزها و در کل این هزار برنامه. خب الان چیل فانی هشه که تو تشکر کردی من بیفانی و باید بگم خیلی ممنون خدا بگم چی چی بگم دیگه <تصفيق> <تصفيق> یه خاطره، یه جمله، یه هرچی که به ذهنت میرسه. والله هیچ بیکار شدیم رفت. بالا 6 سال مردمو شستیم، گذاشتیم آفتاب، الان فقط رزوممون پربار شده. خوشویی کارواش و رستوران ما رو استخدام میکنه دیگه فکر کنم بهتر از این نمیشه دیگه. امیدوارم 6 <تصفيق> سال ما رو بشیرو بذار آفتاب همین دیگه. امیدوارم هر جا خوب باشی، موفق باشی و بدون که هم ما هم مخاطبای رادیو پاسوردا دوستت داریم و برات آرزوی موفقیت می‌کنیم و سال نو نوروزم پیش پیش مبارکت باش مبارک همگی خدا نگهتا سال نمیذارم که کجا و دیگه همین خدا نگهتا شبای زیادی کنار شما وقتی به یه نقطه میرسیدیم گفتیم تموم شدیم اما به قول اقبال لاهوری گمان مبرکه به پایان رسید کار مغان هزار باده ناخورده در رگ تاک است اون شبا گذشتن و رادیو پس فردا به ایسکای آخر رسید شنبه بعد و شنبه های بعدتر هم خواهند اومد اما رادیو پس دیگه در کار نخواهد بود. پس فردا تموم شد. اما مهم اینه که ما هستیم و شما هم هستیم این رابطه رابطه‌ها پیوندی نیست که تو خاطره خاطره‌ها و ها, ها مَحّ بشه. پس هر چند چی نشده برای خیلی چیزا دلتنگیم، اما به این امید خوشیم که یه روزی برمیگردیم. با خونی تازه در رگ‌ها و انرژی که مسلماً روی پایه‌ی خاطره‌ها و تجربه‌های رادیو پاسوردا بنا شده، اما دیگه رادیو پاسوردا نیست. آخرین شب پاسوردویتون به خیر. یادها و خاطره‌های موندانیو، پای که صدای منو میشنبی. از خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمان و بوشهر و فارس و یزد گرفته تا آذربایجان و اردبیل و زنجان و قزوین و تهران و از سمنان و اصفهان و چهارمحال و بختیاری و و خوزستان و همدان و ایلام گرفته تا گیلان و مازندران و کردستان و کرمانشاه و لرستان و مرکزی و قم، همه و همه، شمال و جنوب و شرق و غرب. حتی اونایی که تو جزایر خلیج فارس مثل کیش و قشم و ابو موسا و خار و به بزرگ و کوچک صدای ما رو میشنون میخوام به همتون بگم درست دوریم ازتون ولی قلبمون با هم یکیه درست هم رنگ نیستیم ولی یک رنگی شاید یک زبون نباشیم ولی یک صدایی و همه اینا مهربونی یک رنگی یک صدایی یعنی ایران چندان که گفتیم و ما تپوفان چندان که گفتیم و ما درمان نکردم به این